اونا میخوان بگم شهرت بین قدما اگر یه فتوایی بین قدما مشهور شد به ذهن میزنه که قدمای متصل به اصحابه هیچ روایتی در کار نیست دلیلی صالحی در کار نیست اگر شهرت بین اونا هست به ذهن میزنه که قبل بین قبلی ها مشهور بوده خیلی بعیده هیچ دلیل صالحی نیست در این میان اینا مشهوره یه هم مشهور شده بدون دلیل ساله قبلا مشهور نبوده اینا بعیده. ما شهرت جیل لاحق کشف میکنیم شهرت بین جیل سابق را ولو بی مرتبه نیست ولی اونم کشف میشود جیر سابقم که از خواب امه بودن اگر بینشون حکمی مشهور بود رسوخ میاره که این رأی امامه حالا یا فرموده یا تقریر کرده ما تو زهنون اینه این همونیه که مرحوم آقای بروجردی جردی می فرموده ما یک اصولی داریم در کلمات قدما اصول مطلقات اصول مطلقات از امه از اونا گرفتن چه بس اون اصولش دلیلی براش پیدا نکنید ایشان ادعا می کرده که بعضی از کتب قدما مثل هدایه شیخ صدوق مثل کتاب مغنه، مثل کتاب نهایه شیخ توسی و هم سال زالک ادعا می کرده که اینا اصلا معدن برای بیان اون اصول متلقات اگر دیدی که حکمی را به نحو قطعی نابیان بیان می کنن میگن از ظاهر کذا و کذا به نحو ارسال و مسلمات بیان میکنن هیچ دلیلی هیچ روایتی شما پیدانه می کنی. این معلوم میشه که این مسلم بوده از اصول از قواعد متلقات بوده ادعا کرده که مثل محققم تا این محققم آمده فرموده محققم در شرایط تقسیم کرده کتابش را اگر نگاه کرده باشید یک قسم از شرایع بیشون میگه اصولن اون بحث اول اصولن بعد که تمام میشه میگه فلو واحق. بعد میگه مسائلو بعد میگه فروعون اون ها اون مسائل اشتهادیه که از خودشون گفتن اون قسم اول شرایع گفته اصول متلقاتن ما توجی کردیم نهایه اصول متلقاتن ما این رو کردیم گفتیم معنای متلقات نه که همه اینا هرچی اینجاست متلقاتن نه یعنی اصول متلقات رو در اینجا آوردن وگرنه ای همه شرایق لواحقش کمه بیشترش غیر لواحق فروعش کما ما در اخیراً کردیم نمیشه همه اینا اصول متلقات باشن خودشم گفته اصول متلقات حدود مثلا 500 تا مست اصلا اینا هزار حکم دیده میشه اینا نمیشه اصول متلقات باشه عباراتش استراب داره ها. یا اینا که اینا که نوشتن مسترب نوشتن یه حرف جدیدی بوده هنوز خیلی بالا پایی نرفته چی میخواه بگه ایشان تو بعض کلمات هست میگه برای بیان اصول متلقات نه که همه نهای شیخ همش اصول متلقات باشه نه گفتنی نیست کمن کمن اونا او را علایه دنبال بکنید ما نتونستیم و فهمیم توجیح میکنیم کلامیشان را این کتبی را که ایشون اشاره میکنه ادایه صدوق نمیدونم کتاب نهایه شیق شرایعه محقق و هم سال زاله چند تا کتاب ها را میارن اینا میگن که ظاهر بعض کلماتونه که همه اینا میخوان هم اصول متلقاتو بیگن خیلی زیاد میشه ما توجیه کردیم بعضی عباراتشون بایی توجیه ما سازگاریه یعنی اون اصول متلقات تو اینا هست اینا سعیشون همین بوده که اصول متلقات را بیارن به اضافه مضمون روایات دیگه نه فقط اصول متلقات با اونش تنافی داره که میگفته حدود پنسد تا این اصول متلقات الان مهم نیست مطلب جدیدی بوده خوب به اسطلاح بالا پایین نشده، پخته نشده اصول متلاقاتیشون مخواه یعنی اگر یه حکم کلی را دیدیم در همه این کتب یا در اکثر این کتب یا نه اصلا همین موجود در یکی از اینا باشه نه روشن نیست اگر خواسته باشه بگه همی که موجود در این کتکتب اینها باشه ما در هدایتش شیخ صدوق یه حکم کلی را پیدا بکنیم بدون هیچ مستندی خواسته بشه بگه یه از اصول متلقات هم نه ایران نمیتونیم باور بکنیم شاد زایده فکر صدوق ها یه روایتی یا از مذاق شر اینا مذاق شر و اینا خیلی ادعا داشتن که ما فهمیدیم شریعت چیه تموزیاد میکردن و ازن روایات را میگفتن ما میفهمیم شریعتینه. اینه یه راوی را به حامل فقه نلامانو و افقه ما نمیتونیم یک حکم کلی به صورت ارسال مسلم اصلا شیخ توسی گفته از ظاهر اینی که اینی که از مثالای آقا بروجردی بوده ما معلوم واسطه شنیدیم شون میگه این که شیخ توسی میگه از ظاهر وجوب سلاس تسلیحات فرکتین فر لخرین معلومش از اصول متلاقات هم نه شیخ توسی خیلی جا از ظاهر میگه ارسال مسلمات میتونه در یک کتاب دیگهش خلافش میگه